این یک فیلم مستند از جنگ است جنگ ایران و عراق جنگ ایران و عراق در چه سالی آغاز شد؟ آخر شهریور سال 1359 رژیم صدام به ایران حمله کرد چرا رژیم صدام به ایران حمله کرد؟ برای نابودی انقلاب اسلامی به تحریک قدرت های بزرگ به ایران حمله کرد نیروهای عراقی به کدام شهرهای ایران حمله کردند؟ نیروهای عراقی ابتدا به استان خوزستان در جنوب ایران حمله کردند جنگ فقط در استان خوزستان بود؟ نه، نیروهای زمینی عراق به استانهای غربی و جنوبی ایران حمله کردند هواپیماهای عراقی نیز شهرهای زیادی را بمباران کردند آیا آنها تهران را هم بمباران کردند؟ بله، تهران و بسیاری از شهرهای دیگر واکنش مردم ایران در آن زمان چه بود؟ حده زیادی به جبهه رفتند و از وطن خود ایران دفاع کردند.